سراو تا جوشا ایش و هشتا او این تا سوچا مننگ ها آورنا وی چی تحیا نرم نرم و تنوی پرا مز یانگ و ساز یای و اذنت و پعی پس بهترین گفته ها را به گوش بشنوید و با اندیشه روشن بنگرید سپس هر مرد و زن از شما برای خیشتن از میان این را برگذیدید این آلیب را پیش از روز بزرگ نیک دریابید آگاه شوید و آگاهی دهید. در اینجا در این بند پایانی به گفته قدیمیان اون رو شاهدم هم از قید رسید پرا مزایا این پرا همون فرا هست که در پرسش دوست گرامی آمده بود که پر درسته یا فر و همانگونه که بار نخست گفته شد من در این نگاه نگاهم و تلاشم توانه که نخست از اصول یا بنمایه ها و پایه ها بگم و تعریف‌های های پایی رو اون اندازه که نیاز است بازگویی کنم تا آروم آروم جواب یفته ایکی از دشواری هایی که در راه آموزش و درک و دریافت درست این دین و جهان بینی وجود داره اون ناهمسانی و دگرگونی که اختلاف بنیادینی هست که ما بین اون و برخی دین ها به ویژه دین های سامی ابراهیمی وجود دارند چون با دین های به خاوری مانند هندو بودا اینها خب نزدیکی های بیشتری هست ولی ناهم خونیاش با اینهای سابر ابراهیمی بیشتره که با نگرش به چیرگی چندین صدهی ای اینگونه سیستم های باوری در بخشایی از جهان و به ویژه کشور ما شگفت نیست ولی راست و درست کردن اون نیروی زیاد میبره درست مانند چرخ سنگین و بزرگیه که به یک سومی چرخه و چاره نیست جز اینکه نخست نیرو گذاشت و اون رو نگه داشت این چرخ تا بتونه سپس سمت سو راستاشو بگر کنیم و به راه درستش بندازم این بازنموت ها یا تعریف پایهی و مهم مانند خدا و دین و پیامبر از اینا آغاز میشه تا آین و سنت و روی هم رفته فرهنگ و کل فرهنگ رو در بر میگیم که فرهنگ هم به حال همجای گفتیم اصلا پایه و مایه رفتارهای اجتماعی ما ماست فرهنگیمونو باورهامون ممیم بنابراین من تلاش هم داشته از زبایای گوناگون به این بازنموتا و پدیده ها و مفاهیم نگاه و گفتگو کنم تا کم کم نگاره یا تصویر بهتر رو کامل تری از اونا به دست مید. پروانه که در همین آغاز سپاس جرم گرم خودم رو ارمقان همه اون روشنندیشان و دانشمندان گرامی کنم که گاه به از دستمایه و دسترنج دانشی اونها و گفتارها و نوشتارهاشون برای پرمایه تر کردن سخنان خودم بهره خواهم از آنها نامی نمیبرم اما مهرشون در دلم و دانششون در سرم هست به من و دیگران رو در زندگانی آموختند هم گونه که ما یک را رو و با با افشاندن دانه‌های های دانش هستی خود این کار به پیش میبریم خب اکنون تیشه پس از این پیشتر آمد بیاییم و نگاهی دوباره بندازیم به مفهوم دین بار پیش گفتیم که دین یا دعای زرتشتی ایرانی همانا دیدن است و دیدنی جرف و بنیادین که به گفته دیگر بینش است. یعنی فهمیدن و درک درست هستی و زندگانی یا دست کم خواسته یعنی خواستن این که بفهمیم و درست ببینیم و داشتن چشمانی باز و روشن و جستجوگر و پژوهشگر برای دیدن و دریافتنون از چیم یا معنا یا معنای دیگر دین همانا وجدان آگاه هم یاد کرد همان آنچه که ما رو به انسانیت خود جایگاه والای این انسانیت به منظره همکاران آفریننده و آفرینش در جایگاه آگاهی یافتگان به هستی خیش و به پرسش کشانندگان آن آگاه می‌کند. یعنی ما به هستی خیش آگاه شدیم به خاطر داشتن نیروی اندیشه و خرد و این وجدان آگاه ما رو به سوی نیت یا سازنده بودن و اشایی زیستن راهنمایی پس بینش و وجدان آگاه از دیدن میگیم بیاییم و برای بازدر کردن و روشنی انداختن بیشتر بازی کمی بیشتر به اون نگاه کنیم ما برای دید برون یعنی همان دیدن با چشم برون ببیشه برای دیدن چشم های دور میگوییم دست کم به پنج کارمایه یا به پنج چیز به پنج آمل نیاز داریم این نگاهی بکنیم که این تا چی هستند که ما باید اون را داشته باشیم تا بتونیم درست ببینیم با چشمان بیرون وقتی نگاه میکنیم نخست هوای تمیز و پاکیزه میکنیم ناگفته پیدا که در هوای محالود دودالود، خبارالود یا عبرالود نمی‌توان تماشای چشمنداز های دور نشست پس نخستین بایستگی برای دیدن چشم های دور چیست؟ هوای پاکیزه دوم روشنایی نور ولی نه روشنایی کرانبسته یا محدود چراغ بلکه روشنایی دامنگستر خوشید دامنه روشنایی هید چراغی ما رو به شناخت زشتی ها و زیبایی های کرانه های دور راهبرین نمی کنه ما نور بیشتر میخوام روشنایی بیشتر میخوام. خواهم چشم کشم و چشمان بینا هستن اگر هوا پاکیزه باشه و خوشید جهانتا پرتوب خود رو بر کرانه های دور زمین هم گسترده باشه ولی ما چشمان بینا نداشته باشیم از دیدن اون که پیش روی ماست بی بهره خواهیم بود. پس دومین وایستگی داشتن چشمان بینا هست. چهارم اراده و خواست دیدن. اگر چشمان بینا و هوای پاکیزه و پرتو خوشید باشد ولی اراده دیدن در کار نباشد چیزهای پیرامون را نخواهیم دید. و شایست وناشایست را نخواهیم شناخت پنجم هماهنگ کردن چشم سر و چشم دل بارها دیدیم که چشمان ما گزارش نادرست به ما دادند و ما را به گمراهی کشوندند برای نمونه چشمان ما یک هواپیمای رو که در فراز هزاران پایی در پرواز است به گونه‌ای به ما نشان میدن که اگر ما این اوپمار رو بر روی زمین نمیدیدیم و اندازه‌اشون نمیدونستیم فکر می‌کردیم یه پرنده کوچیک سپید چنگی است که در آراما و آسیدار پرواز میکنه ولی ما اوپمار رو بر روی زمین دیدیم سوارش هم شدیم و با سر و صدای گوشخراش و شتاب شگفت‌انگیزش هم آشناست از این رو گزارش نادرست چشمان خودمون رو بهان نمیدیم و آنچه را که با چشم سر میبینیم با دانسته های پیشین خودمون به هم میآمیزیم و در میامیم که آنچه بر فراز سر ماست یک پرنده کوچک آرام و کنپرواز نیست بلکه هواپیمای قول است، که با دخاتون بار و سطح ها سرنشین و با شتابی نزدیک به ازهای کیلومتر در ساعت در پر بس. خب. حالا این این دیده برونمون بود که گفتیم برای دیدن درون نیز ما به همین کارمایه ها نیاز داریم. پس روزرتوش این تماشایه درون رو دعینا می نامه. و کار مایه های اون رو هم به ما نشون میده تا به یارمندی و کمک اونا بتونیم شایست و ناشایست رو اصلا باز بشناسیم و درست داریم و اخلاقی ارزش ها رو برگزینیم گفتیم که نخواستین بایستید برای دیدن چشم اندازهای دور چیست هوای پاکیزه پس باید نخوست هوای درون رو از همه آلودگی های بیاندازگی‌های ها بی های خشم و کینب و آز و نیاز و ترس و تنبلی و بدبینی و دژمنشی و دیگر فروزه هایی که تیره کننده روان هستند پالایش کنیم و هوای درون خودمون رو پاکیزه کنیم در گامه دوم باید پرتب خورشید خرد رو و چیزی که میخواییم بررسی کنیم بتابانیم تا بتونیم به درستی زیر و بم و بالا و پایینش رو ببینیم و بررسیش کنیم آن که چشم سر گزارش میکنه پیکر سرد چیز هاست و گزارش نادرستی است از خردی و کلانی عرضش تنها در زیر تابش خورشید خرد است که میتوان به ارزش های والا پی برد و به سوی بیهودگی ها نرفت. باز این است که در تشت بزرگ در زبان گاتایی دعینا نامیده و در پارسی امروز به پیکر دین در است. در میدان این دین هیچ فرمانی جز فرمان خرد پذیروه نیست. پس این هم یک بازنمود دیگری از دین یا دینا. یک تعریف کوچک دیگر هم می کنم و بعد یک آسا آساک کوچکی دوست دقیقه ای اگر بذاریم سامانگری گرامی و اگر موزیکی چیزی پخش بشه که هم ما یک آساکی بگیریم و هم دوستم. کتاب ها و نوشته های کهن ما از اونها که ما به ادبیات ابستایی می نامیم. که براستی روی هم رفته ای از آزمون ها و تجربه ها و فرا گرفته های پیشینیان ما هستند که بازنمود زیبایی دیگری هم از دین دارند برابر ها دین یا بهتر بگیم دین خوب مانند یک بانوی زیبای جوانی است و در برابر دین بد مانند یک انسان زشت و زشت خوب این بدان مفهومه که دین خوب چیزی است زیبا که انسان رو هم زیبا می‌کنه اون به مانند یک زن جوان که نماد زایندگی زندگی و آفرینندگی است که همواره باره میتونه از خود فرزندان تازه و زیبای دیگری بزاید و آن میتواند همیشه انسان را جوان کند و تازه نگه دارد و اندیشه های زیبایی به او بدهد تا خود و جهان پیرامون را زیبا کند خب این هم یک بازنمودی که از عوستاه هست اکنون اگر این دو بازنمود رو در کنار هم بگذاریم شاید بتونیم بفهمیم که یک از دیدگاه جامبینی ما یک دیندار خوب کسی است که دارای دید درونی یا چشم‌های پاک و روشن و شفاف باشد که آن بانو یا آن نیروی هنیش آفریننده و تازه کننده درون خود را پیدا کند و با راه اون از آزمون زندگی بگذرد و انسان نیک و زیبا درون باشند این روی زیبا و آفرینندو نگاهبان زندگی و جان که در درون ما هست با ما گفتگو هم دارد اگر ما بخواهیم بتونیم آوای اون رو بشنویم باید گاهی در سکوت بنشینیم و به درون خودمون گوش کنیم دردین و فرنگ ما به این میگویند چی؟ سروش یا سروشم یا آوای درون بسیار خوب سامان گره گرامی آیا امکان دارد که یک موسیقی زیبایی یا به گونه ای چیزی پخش بشه؟ یعنی منون یادیم و چو یعنیم شدنم و شانو تو هر بردگارا با اندیشه پاک و دلی روشن به تو رو می آورم تو را ستایش می کنم که سراغازی و سرانجام نخوص ای هستی و خواهی بود ای هستی بخش دانا تو را نیایش می کنم و از تو میخواهم نیکندیشان و نیکوکاران و همه کسانی را که در راه راستی و سازندگی گام بر میدارند، کام سازی چه به راستی میدانم که نیایشی که از روی راستی و از جان و دل برایت هیچگاه بدون پاسخ نخواهد ماند ای اهورا مزدا تو را می ستایم که انسان را با نیروی اندیشه و گویایی به دیگر آفریده برتری دادی و به او شهریاری بخشیدی تا هنجار آفرینش را پاسدار باشد تو را ستایش می کنم ای مزدا اهورا <تصفيق> که بر همه چیز آگاهی <تصفيق> که به فروهر پاک اشوزرتوشت چنان ویژگی و توان بخشیدی <تصفيق> تا با خرد خدادادی نیک بودن درست دیستن و مهر ورزیدن را به مردم بیاموزد با درود به یک که باشندگان در روم و همچنین به موبد گرامی کامران جمچیدی دوباره به تالار بازگشتیم موبد جمسده من رو اگه دارید گویانه رو من آزاد کنم که در اختیار شما داشته باشه بخش و بخش دوم و برنامه رو ادامه بدید بسیار علی. با هم به بخش دوم صحبت های موبت کامل جمشیدی می‌پردازیم. پردازیم بله با سپاس از سامانگرهای گرامی و با درود دوباره خب این هم سرودهای های زیبا شنیدیم هم آوای گرم و زیبای شاد جوان موبت بهرام شهزادی رو که شروبختانه چندی پیشیشون رو از دست دادیم و برایشون شادی روان آرزو اومد خب داشتیم تا کنون از دین گفت کنو کردیم از دعه نامی گفتیم این رو یک کمی دیگر ادامه میگیرم و گیری ازش میکنم پس این چیست؟ گفتیم چشم درونی و بینش راستیجوی و درستیگرا یعنی حقیقت حقیقتجو و واقعیتگرا برای دیدن و بازشناختن راستی از ناراستی یا شایست از ناشایست که از آن به وجدان آگاه نیز یاد کنند که به راستی همان خرده که باید راهنمای انسان باشد. به زبان دیگر دین آگاهی از سرشت و ذات بنیادین انسان از اون نیروی آفرینندگی یا زایندگی که در جرفای او وجود داره و همچنین نگهداری و پرورش و بالش اون نیرو در درون خود از چه راهی؟ از راه هماهنگی یا هماندازگی نیروهای درونی و برونیش این داستان نیروهای درونی رو من در به اون در جرفای بیشتری خواهم پرداخت که در, در دین ما چه نامهایی داره و چه بازنموتهایی ازش هست از اون میگذرم الان ولی این نیروها به طور در تعادل باشند در همهانگی و هماندازگی باشند تا انسان بتونه در بتونه عشایی بشه بتونه اون همهانگی خودش رو به دست بیاره و از اون راه اون نیروهای درانیش در واقع به کار بیافتن تا بتونن هم اون خود انسان رو آگاه در بکنن و به پیشرفت بندازند و به همراه اون به جامع رو و خوازمان رو خب این آگاهی یا این دین انسان هست که در درازای زمان و زندگی و در گذر از آزمون های زندگی شکل و رنگ و بو و مزه به خودش می‌گیره اگه میخوای اینجوری بگید و دین هر کی هم برای خود اوست که می‌تونه دارنده خود رو یا زیباب و نیک و بزرگ و نیرومن کنه و یا وارون اون زشت و بد و پست و ناتوا بدینسان اون دینی بهتره که مردم رو در رفتارشون با یکدیگر و در برابر همه گیتی زیباتر دوست داشتنیتر پسندیده و بلند پایه بکنم بیگمان هر کس در این جهان هنجارمند عشایی اونجا که رفتار کنش واکنشی یکی از قوانین اون به شمار میاد پیامد چگونه بودن و کنش خود رو هر کسی از جهان پیرامونش دریافت میکنه. نتیجه کنن پس هر چی که زیباتر و بهتر باشیم جهان هم زیباتر و بهتر خواهد شد اینه که بهش میگیم گزینش درست و نیک و این شناخت مسئولیت یا هیچکاری انسان مسئول و آزاد و مسئول که از این قاهم گفت اینه که بخواد انتخاب نیک و درست در زمینش از زندگیش بکنه از هیچکاری یا مسئولیت گفت و باید بگیم و باید هم بگیم که دین بهی دین آزادی گزینش و هر گونه آزادی با خودش و در خودش مسئولیت خیشکاری داره, داره، پاسخگویی داره انسان پخته و فهمیده و رسیده و آزاد در برابر گزینش و که این خودش پاسخگوه که گفتیم نتیجه و حوده اون رو هم میبین این هم بایدش انگشت بذارم که یکی از اون ناهمسانی های بزرگ و بنیادینه که در میان این سیستم باوری جهان بینی ما و برخی دیگر سیستم ها وجود داره یکی اون سیستم است که برات فرمان و دستور و بکن نکن و, و نهگ همیشگی از بالا داره بدون امکان چون و چرا و به پرشتش کشوندن اون که چرا و دیگری اون که خرد رو و نیروی آخرین رو میخواد در تو به کار بندازه و چشمانت رو باز کنه و گذینش رو به خودت و خردت باگذاره البته که هر سیستمی هم قانونمندی های خودش رو داره تا اون سامان و نظم و هنجار نگاهبانی بشه و البته هرج و مرج آشفتگیی که خود دروغیست دروغ است پیش نیاد و این خب خی خشکاری همه آزادگان هست تا هرج و عرضش و بزرگی خودش رو بدارن و با سامان درست اونو پاس بکنن پاس دین بهی انسان های بالغ و پخته و رسیده فرهنگی بینشی میخواد که در پیش برد نیکی و سازندگی و این سادگی در برابر ویرانگری و زیاد خواهی و زیاد روی ها و دروغ دست در دست هم به همازور شکل کنند خب دیگر من گمان میکنم که به اندازه بسنده گفته باشم و دیگر از دین میگذارم خب دوستان یکی از پرسش های باز هم بنیادین و همیشگی زمانی که سخن از دین هست چگونگی و چرایی خداوند پرداختن به این پرسش و باز گشودن اون میتونه از سوی بسیار ساده و در چند فراز و واجه گفته بشه و میتونه چندین ساعت گفتگو و چندین نفتر و کتاب نیاز داشته باشه ما میگیم که برای شناخت خدا باید نخست خود و جهان رو شناخت همانا راه خدا شناسی از خودشناسی و جهان شناسی می گذن. مفهوم این گفته اونه که هر اندازه با چشمانی باز و روشن در پی شناخت زیر و بم خودمون به مانای انسان و مردم باشیم و دنیای درون و پیرامون خودمون رو هم از زیر و بم اون بیشتر بشناسیم بیشتر به چرایی و چگونگی اینها پی میبریم و به زبان دیگه اشا یا قانونمندی های هستی رو بهتر و بیشتر میشناسیم و از اون راه آنچه که اشار آفریده و با آن این همان هست یعنی یکی یا همان خدا خداوند و خداوند مزداب و اهوراب و اهورم بهتر و بیشتر خواهیم شخت اما خب اینم میدونم که بسیاریتون خوب گرفت خوب گرفتیم که همواره به دنبال ساده ترین راه شنیدن از دیگران باشند بنابراین ما هم چند باز نبود از خدا یا اهورام در اینجا ارائه میدیم تا سپس با پرداختن بیشتر به درون مالی اون یا فروزه ها یا صفات اون که ما بهش میگیم چی؟ امشاسپندان به کندوکا و شناخت بیشتری برسد. خب. باز میگم به اون نوشته ای که در آغاز معرفی کردم به نام پیام پاک از اون میخونم. در تعریف اهورامزدا اهورامزده به چم هستی بخش دانا یا خرد کل باشنده و یا به زبان ساله و به گفته روانشات فردوسی توسی خداوند جان و خرد چیست؟ آن نیروی فراگیر و جهانی است که همه چیز در اوست و از اوست. به گفته دیگه تمامی آفریده‌ها نمودهای گوناگونی هستند از این نیروی کلی و فراگیر که دارای سه ویژگی بنیادین هستند: هستی، آگاهی و آفرینندگی. یعنی ابورامزدا هست, آگاه هست و می خداوند از مینوی افزاینده خود که در زبان ما در واژگان زرد بهش میگن سپنتا مینو یا به گفته درست در سپنتا مینو در اینجا به کتایی بگم که این واژه ها سپنتا یا سپنتا که از ریشه عرصتایی سپی سانسکریت عرصتایی پی میان سپی که در زبان انگلیسی امروز هم به شکل سپید داریم یا همون شتاب سنن سپی آن چیزیست که شتاب میگهد آن چیزیست که میفزاید افزون میشه. در زبان باز هم انگلیسی و های اروپایی اکسپند ما داریم اکسپنشن یعنی گسترش برای کردن روش کردن که این همین واژه سپنت است حالا این سپنت در زبان ما در فرهنگ ما آروم آروم به مفهوم های عام به خودش گرفته مانند سپنت مثل پاک حتی واجهان مقدس این روش میاد که همجوی گفتم اگه بخوایم به درستی بفهمیم که گویندگان نخستین چه منظوری از این واژه ها آدم میتونه به لیشه ها بلگره مینو یا مینو که بعد به مینو و مینوی و معنوی ترشک داده ماینیو از ریشه معنایی است. همون که ما در وحومانه یا پهمن داریم که باید بشوییم برا. به معنای اندیشه دیشه. به معنای آن گری یا نیروی اندیشه یا به گفته بازیگری زبان هم منتالیتی، ذهنیت که خب باز در اون فرنگ عام به معناهای روان به خودش گرفته روان آفریننده مینوی افزاینده آفریننده و پیشبرنده بنابراین این اون فروزه یا یکی از اون فروزه است که ما از اهور آمازدان میدانیم و میگیم که بر, بر پایه این فروزه خود سپن مینو بودن خود می افزاید یا می آفرین و بر پایه چی؟ یعنی در چه چارچوبی قانونمندیش چیه؟ قانونمندیش همونو که بهش میگیم یا ارته یا راستی انسان و جهان زنده و پویندهش بخشی از این آفرینش خوب هستن ما آفرینش رو به طور کنی نیک میدارم حالا این نیکی و اینها رو باید بیشتر بهش خواهیم از اونجا که اهور یک نیروی کلی هست و تمامی هستی رو در بر میره دارای پیکر و شکل ویژه نیست همجوری گفتیم برای شناختش باید فروزه هاش رو شناخت که این فروزه ها و این توانایی ها و این نیروها در انسان هم هستند که راهنمای زندگی او و پیشرفت او به سوی تکامل می باشند. بنابراین انسان دارای همان فروزه های است که باید به آگاه شده و با پیشگل و شکوفایی و افزایندگی اونها در خود ما میگوییم خود را میتواند مزداغونه گردنند خب اول پایه همین هم انسان هایی گفت آگاه و مزداغونه شده باید دست به دست به هم بدن و دنیای زنده رو در مسیر تکاملی خودش پیش ببرند و این چنین انسان همکار خداوند هست و همکار اهورام ازده تا به اینجا به اینکه که اهورام و خداوند ایرانی چیست به کتایی بسنده می کنم وقتی که ما بیشتر در این فروزه ها و همشاست پردان پیش بریم باز دوباره بر گردیم به اینا همه این ها به, به گفته ای اشاراتی هستند به این مزده به این اهورا مزده به این نیروی فراگیرنده کن و این یگانگی که همه چیز رو به هم میبافه و میدوزه و در واقع اهورا مزده نماد این یگانگی هستیست که همه چی از اوست و همه چی در اوست در جایی دیگری نیست اکنون ساعت نو شب زمان ماست ما میتونیم زمان که داریم ما میتونیم یک ده دقیقه پازده دقیقه دیگری هم در نهایت گفتگو داشته باشیم سپس اگر پرسش پاسخی از برمی پردازیم و بقیه های برای آید دست کم آغاز بکنیم که یه خود در توش پیش باشیم آن چیزی که بابش میگوییم بنیانهای زندگانی خب؟ یعنی یا اصلا ذات سرشت هم همیشه همیشگی هم بی زبان بی مکاننن. در هر در هر سطحی در هر شکلی از هستی آن میتونه اون رو تعریف براش بذاره جاشو پیدا کنه اگر در انسان نگاه کنیم اگر در تن انسان، در روان انسان، در هازمان و جامعه در گیتی در هستی در کهکشان در همه اینا بر نظر ما تعریف پیدا کنیم. خب چرا میگیم امشاست بندان اگر کسی نمیداند این رو هم بگویم این واژه همچه اسپندان یک واژه است که برای این گذاشته شده از نخستین مثل پیرامونیان و بیرومانش از از در همون نخستین بندگات ها میاد میشا سپنتا باز میبینیم که واژه اسپنتا در اینجا اومده به معنایی گفتم میشا نامیرندگان، جاودانان، جاودانان افضاینده این بنیان ها چون جاودانی هستند، همیشگی هستند و همه چی رو می از این رو بهش همه شاسپندان می گوییم خب، دخواستین رو گفتیم می بگیم همون سپنتان میندیوی که چند دقیقه پیش براتون تعریف کردم اونو مباین نخستین میتونین بگیم که در واقع همه اینا نگفتم خود عورام در و با عورام ازداز اون گوهر افزاینده یا فروزه آفرینندگی عورام ازداز و از این فروزه است که آفرینش میتونین بگیم پدید اومده و این قدم رو همواره میفضایه میگستره و به پیش میره و به پیش میبره این رو میگیم سپنتا مینو گوهر افزاینده. سپس می‌دونیم به و هو منا یا بهمن فارسی امروزه و یا وح یا به که به شکل‌های مختلفی در میاد این واژه یعنی خوب نیک و منا همچنین می‌بینیم اندیشه و اندیشه منا اندیشه نیک خاست نیک خاست خوب او جهان رو با اندیشه نیک آفرید با وحومنش آفرید آفرینندگی و سازندگی یعنی نیکی یعنی خوبی به زبان دیگر میشه گفت که وهومن اون شالوده و نقشه بزرگ و فراگیر آفرینش است. با کمک وحومن هست که انسان به, به وجود خودش به هستی خودش آگاه میشه به چگونگی اهورامزده آگاه میشه به راسهای زندگی دست پیدا میکنه و به خیشکاری یا وظیفه خودش در زندگی آشنا میشه پس بنابراین این وحومن است. که زندگی رو به ما میاموزه که خیرات به ما میده داشتن اندیشه نیک نخستین گامی است که انسان برای رستگاری بردیدن از دیدگاه فلسفه زرتوش انسان یک چیست، یک باشنده اندیشمنده و درست همین اندیشیدن و جرف اندیشی است که انسان را از دیگر جانداران به گونه جدا می کنه. چون که به نیروی خرد می انجابه. خرد چیست؟ به ساده ای خرد که با اون میشه پدیده‌ها پدیده ها رو با هم سنجید و درست و نادرست، شایست و ناشایست بدتر و بهتر سازنده و ویرانگر رو اصلا جدا کرد ما هستیم انسان ها کرد این کار میکنیم در مورد بد و خوب من در یک مقوله دیگری به گسترگی سپرگم کن. همین شناسایی خوب از بد به انسان اختیار گزینش رو برگذینگر میده و او رو آزاد و مختار میکنه که یکی از این دور بالکوزیکام بنابراین امروز گفتیم آزادی در گزینش و با گزینش است خردمند کسی که به او من نداره کسی است که پس از شناسایی و سنجش اون چیزی رو که سودمندتره انسانیتره اخلاقی و بهتر برمی‌گزینه وارون خردمند چیه؟ بهش بگیم نابخرت. که اون کسی که پس از سنجش بدتر و بدتره رو این برمی اینجا یک گزارش کوچیکی بدم که ما بیخرت داریم نابخرت هم داریم بیخرت کسی که اصلا نمیتونه برگزینه. یعنی نمیتونه بسنجه حالا دانش نداره در واقع میتونی بگیم بیدانشه و بیسنجشه نابخرت کسیه که چرا؟ از دیده خودش دانش خودش رو داره ولی خ... گذینشهاش گذینشه که به سوی بدی میره به سوی ویرانگری میره به سوی ناسازندگی میره و برای خودش رو بیگران حالا برای خودش را دوت فکر میکنیم ایسوری دستی هم برای دیگران برای جهانیان و هرچی که پیر آمون خودش ضرار زیاد میارید خودش هم خواهد دید. در اینجا نیازه که باز ذریعا بگیم خوب چیست و بد چیست به کوتاهی بگیم باز بنابر گاتا خوبی و بدی چیست دو راه اندیشیدن سپنتا مینیو، انگره مینیو مینون یه سپنتا گوهر سپنتایی و افضای اندهی گوهر انگره انگره به منای نگاه دارنده از پیش رفته. انسان آزاده که از میان اون دو یکی رو برگزیده. در هر زمان در واقع در هر گذینش و هر انتخابی که ما می کنین از کوچیک گرفته تا بزرگ همیشه گذینش هست با بخار می نخواهیم اکنون بخوایم بشینیم اینجا با هم سخن بگیم شما گوش بدید گزینش کردید. من گزینش کردم بیام برای شما سخن میگم. از چیزی که میخوریم و چیزی که میپوشیم و از راهی که میبینیم همش گزینش. و در هر کونه از این ها یه راه بهتری همیشه میتونه وجود داشته باشه. دیگه اون باخترد ماست و با خرد ما به دانش ما پای داره که هر چقدر دانش ما بیشتر باشه بنابراین گزینش ما بهتر خواهد بود. خب این کمی از وهمنن یا بهمن عشا رو هم میگیم با عشا به پایان میرسونیم بار دیگه که آغاز میکنیم باز من عشا رو بازگوی خواهم کرد تا بیشتر تنوانش کنیم عشا چیست؟ قانون و و ترتیبی که آفرینش بر اساس اون شکل گرفته و به پیش میگه بنیان این هنجار بر چیست؟ بر راستی، درستی و داد یعنی در این دیدگاه آنچه که آفریده میشه قانونمندی داره و این قانونمندی رو دید ما راست و درسته. یعنی آنچه که حقس باید باشه حالا ما اگه همه جان نمیفهمیمش اون دیگه مشکل ماست تا رو بیشتر کنیم و بخارمیم در این چارچوب این در چارچوب اشها از قوانین فیزیکی و مادی و آخشیجی به قول ما آخشیت یعنی ماد بخوایم بگیم به یا انصار گرفته تا قوانین جامعه قوانین همبودگاهی و قوانین پیدا و ناپیدای چیره بر دنیای هم حس فیزیکی هم دنیای ماینوی و روانی البته این دنیا میگم باز در موردش گفته خواهم کرد که اینا همه دنیاهای گوناگونی هست اینا همه ما در یک جهان یک دنیا زندگی میکنیم چهره های گوناگونی از یک چیز هست در همه اینا این اشا برقرار است بنابر یک گزارشی یک گفته ای که یکی از دانشمندان خوب ما این اینجوری فرمود بندی کردن که جالبم هست، میگوید اشا یا این قانون راستی کار درست رو در زمان درست و مکان درست و با ابزار درست و برنامه درست انجام دادنه یعنی هر کاری که می‌کنیم، اگر اگه همه اینا توش رایت بشه این کار درسته که نتیجه اون وقت درست باشه به برای دیگه به قانون دقت هم میگن یعنی اینکه همه چی دقیق در سر جای خودش قرار میگیره یعنی به شیوه های گوناگونش میشه تعریف کرد یا بهتر میتونیم بگیم هر چیزی در سر جای خودش قرار میگیره هر کس و هر چیز در سر جای درست و شایسته خودش اون وقت اشعار برقراره اون وقت اون قانونمندی درست برقراره اگه جاها بقول من دگر بشه من جا جای که شایستمه باید باشم نباشم برم جای دیگری بخوام به زور بشینم خب هم, هم خودم بخونه کار خودم رو درست نمیتونم انجام بدم کار یک دیگر خراب میکنم و کمک میکنم که شعال اودای اون هم بودکا به هم, هم بریزه همونجور که در بسیاری جاها هست و کارهای بزرگ رو افراد کوچک کوتا قامت میخوام انجام بده بنابرای گذارش دیگر راه درست برای انجام هر کاری اونه که کمترین مقدار انرژی برای انجام اون به کار گرفته بشه و از به هدردادت بیهوده انرژی جروی گرفته بشه حالا اینم یک تعریف هست من اینو بگم که اینم نگفتم در آغاز بگم که اصلا این واجد خود اشا یا ارتا یکی هم یعنی این ر و ته ارتا به شه در تگرگونی زبانی، تحول زبانی و گویشی و به اون تبدیل شده. بنابراین یکی هستند. هم. همین ارتا یا آرتا که میگیم، اگه آی اثرشو برداریم رتا، این رتا در واقع باز اون ریشهشه، ریشه سانسکریت، اوستاییشه که همین خود را خود رتا رو بگیریم راست هم مثلاً را میاد، یعنی تبدیل شده به راست در فارسی موزه یا right در یا رت زبانه که ما امروزه روز مرمون در صورت هستی نه همه یک از یه ریشه میگن در واقع درست راست راسترین و بهترین به شرک که معنا و محفوومش رو به درستی بفهمیم بهترین کم و برگردان این واژه اشاها هست خب با این سخنانی که در مورد اشا و آرتا گفته شد که آغازگره در واقع این قانونمندی کل هست که بذاری اینجوری براتون میگم میگم اینا اینا خب بازنموت های تعریف ها به زبان پردوی ویمندی ویمندی یا همون تعریف تعریف است که ما میذاریم برای اینکه بتونیم اینا رو دک کنیم به گونه های گونه گون. اه... یک یک تعریفی من دارم که اگر ما بخوایم کل این فلسفه رو این جهان بینی این دین رو با یک واژه بیان کنیم اون واژه به نظر من درستش همین اشاس یا آرتا که راستی راستی درستی که وقتی که بیشتر توش بریم و بفهمیم می‌بینیم که خیلی چیزا و همه چیز رو به راستی می‌تونه دربر بگیره با راستی و درستی برای همه ما و برای همه جهانیان این سخن امروز رو به این ترتیب من میبندم و سپاسگزاری میکنم که با شکی به سخنان من گوش دهید و گوش میدید خیلی دوست داشتم که آدم میتونست همدیگه رو ببینه و چشم در چشمان همدیگه داره و گفته بکنه خب برای شروبختانه نمیشه فرنچیل این کاری کرد اگر بخوام به بخش پرسش و پاسخ بپردازم تا قنون زیادی برای من نیمانه یه پرسش شده و عدوینا گرامی اگر پرشتش دیگه ای هست مهد و برای من بفرستید پرشتشی کردنی که از دوستان گرامی در مورد جهان پس از مرگ آهی آهی آهی <تصفيق> چقدر وقت دارید <تصفيق> شوقی بکنم بذارید اینجوری بگم دسته که هم من به این پرسش این هست که همانجوری که ما هم از از خود بنیان گذار آموزگار بزرگ خودمون چیزی در این مورد نداریم یعنی چی؟ یعنی اینکه روی سخن و روی توجه ما به زندگی است به پیش از مرگ است نه پس از مرگ که البته حالا مرگ یا به شیوه های میشه بهش پرداخت و خواهم پرداخت پستر Uh, ولی این که جهان پس از مرگیشون نوشتن که چی هست و چگونه هست اگه بخوایم بگیم ما در دست کم در فرهنگ کاته چیزی چیری در این مورد نداریم و به اون نمی پردازیم ما از زندگی به اون می پردازیم که خود به خود از دید ما راه پس از این زندگی فیزیکی امروزمون هم اون خود به خود ساخته خواهد شد هرچی که بهش با هر داشته باشیم به نظر من اجازه بدین من برای اینکه حواسم یک جفعه میتونه باشه من ببینم که این پرسش بعدی دوستان به جهان پس از ما یا ج... کلن به دیدگاه ما به مساله به اصلا زندگانی پس از این زندگانی به گونه دیگری من در اینده خواهم پرداخت پاسخ کوتاه خودم رو دادم تلاش من اینه که به اون نپردازم و به راستی درست در این پاسخی که به نظر من هر آدم خردمندی می‌تونه به این بده اینه که من نمیدانم که پس از مک چه می‌شود. خب حالا یا اینکه بگیم خب حالا شما نمیدانید دین چه میگوید این رو, این رو میگذارم در یک گفتار دیگری که بیشتر درمانش کنم پرسیدن که راجع به خورده هوستان کمی توضیح دهید من امروز آ خواندم و به نظرم خیلی از استام و مسیحیت وام گرفته خورده به کوتاهی این است که داستان اگستا و اتفاقاتی که براش افتاد خب هم میتونه دراز باشه میتونه کوتاه باشه اوستا هم که گفتم بار نخست یک یک است یک یک مجموعه ای است یک ای بوده است بخوایم بگیم که از همه دانشهای زمان خودش که در واقع آن چه که دانش بوده است در یک مجموعه جمع بوده از زمان دسته کم حالا ما میگیم هست هخامنشیان ولی پیش از اون هم به نظر خیلی ها به صورت نوشتاری وجود داشته به آنچه چی که ما خب به اقال به ما رسیده که از اون زمان بوده تا زمانی که دیگر میدانیم اسکندر و همراه اسکندر گوجستک و سوزاندن عوستاب و رو بودن یک یک پسلا کپی از اون و بردنش با خود و بعد دوباره تلاش ایرانیان در زمان اشکانیان برای جان جور کردن و بازگردوندن تا زمان ساسانیان که ادامه داشت و در زمان شاهور و در زمانی که مود بزرگ آزربادده بارسپنددان در واقع م بزرگ بودندن خواستم که برای که مردم پرسش داشتند که خب به گونه بتونن بتونند یک یک کتاب کوچکی که بتونه در نیایش های روزانه کمکشون کنه بهال برشون آماده بکنن. ایشون این خوردهار رو فراهم کردن به گونه که از بخش های گوناگون، از گاته ها درشه از یهشت از یهست ها بخش های دیگه یه کوچک های کوچکی از سر کدوم برداشتن کنار هند گذاشتن و اسمش گذاشتن عویست کوچک یا خورد عویست های خورد کپستک خورد عوستا یا عویست کوچک این بس, بس نیایش های روزانه بوده برای زدوشتیان که در زبان ساسانیان این جمع شد و از اونم که پیش اومد میتونم بگم که خیلی دست بردن یعنی دست که به حال در هر زمانی میشه گفتش که دینداران و به اصطلاح دینداران حالا به گونه‌ای اگر بگوییم بگان یا کسایی که به حال دستی در این کار داشتن به شیوه های کوناگون توی وقتا اجازه های افسودن کم کارتن و خیلی جاهش میتونم بگم که هست حالا به گونه ای ولی افسوده هم بهش هست و نمیشم دقیقا اینو دست کذاشت که بگیم مثلا این این تیکش، این زمان وصله این شخص کم شدی یا زیاد شده. این یک چیزه که جزء سنت هست جزب آین هاست و با گاته ها که به سبا کتاب هستیست اگر بخوایم کتاب راه نماست دارد و شدنیست که جا به جا بشه سو سو بشه و این که نشون میگم به نظرم خیلی از مسیحیت با هم گرفته البته این اصلا به طور کلی داستان دیگه است یعنی آری شاید حتما هست بخشهاییست که میشه روش انگوش گذاشت و اینو به پرسش کشید که البته نه این که چون خیلی چیزا هست که در در به طور کلی در اوستان ها بخش های رو بیریم نخواست اینکه خیلی از ماها که بدون داشتن دانش بسنده و با خرد درست انگشت گذاشت میگذاریم رو جاهای گوناگون و آ اینجاش مثلا اینکه چرا اینجوریه اینکه زرتشتی نیست یا خدانه دستکم بخشی از اینها رو ما به خاطر اینکه نمیدانیم دلیل اصلی چیست و چرا اونجا هست ما داوری ها و قضاوت های میتونم بگم بیشتر سطحی میکنیم و باید بیشتر در مورد چرایی و چگونگیش بدونیم که بتونیم نظر بهتری بریم در این مورد اما اما این که به طور کلی اولا ادیان یا فرهنگ ها بر هم حنایش دارن بر هم تأثیر میذارن بر هم نشانه میذارن و به هم وارد شدن به هم وارد میشن میرن میان و این خب حقص برای حنه ی اندیش آقا و برای دیوه زرتشتی هم این جدا نبوده به هر چقدر بیشتر در از نظر میتونم بگم اندازه و یعنی کنیت و شما در اندازه های پایین قرار گرفت خب به هر حال فشار درش بیشتر میشه و این هست حالا کجاهاش و چراش و چگونگیش و باز من میذارم در گفتارهای بزرگتر اما اینکه برخی برخی رو میتونیم بگیم زرتشتی یا گاتاهایی نیست آره میشه پذیرفت ولی میشه در موردش گفتگو کرد و چرایی و چگونگیش رو پذیرفت ولی اینکه رو هم تأثیل گذاشتند و میگذارند آره پرسه شو برد. من این پرسش رو رو جا انداختام برای هرم آخریش رو میخونم آیا درست میگواشد که نماز در زمان عشوزرتش سگاه بوده و در زمانهای پس از آن پنجگاه شده خب برای من این آگاهی میتونم بگم تازه است حالا این پرسش کننده گرامی از کجا میدونم که در اون زمان سگاه بوده مهر کنند و این سرچشمه این دانش رو برای من هم بفرستند تا من هم آقاحتر بشم من در این مورد پاسخی ندارم خب پرسش بعدی پل چین که در گاته ها بیان شده همان پل سرات مسلمان همین میشه می گفتش که پروتوٹیپش بوده آره به گونه ای ببینید اینجوری بگم حتی وقتی به بقیه مساعد جهان و پس از مرگ بقیه مسائل همه چی به نظر من روندش فرایندش چنین بوده و همیشه هست که یک سری اندیشه سر اندیشه، یک زمانی بیان می شد اینه از از, از،, از،, از انسان ها میاد بیرون از اندیشه هاشون میاد بیرون و اون سراندیشه ها در اندیشه های دیگران شکتهای های به خودشون میگیرند و تغییر و تحولات زیادی درشون رخ میده این که خود اصلا چینوت پریتو چین برای اون کسانی که نخستین بار ازش در آنچه که در دست ماست گفته بود کردن که البته در اومده این و پریتو تا به گونه ایش رو زدتش از ان شده که در اون زمان یک یک مفهوم شناخته شده ای بوده برای اون کسانی که شنوندهش بودن برای این توضیح زیاهی درمش داده نشده اما از روی واژگان و از روی در واقع میشه گفت روان گاتایی میتونم بگم که ترتو یعنی میشه گفت جای پرتاب شدن پرتاب شدن و یا چیدن چیدن بر چیدن هم دانش هم عربیته از اونجا هم یا چیستا و این هم از اونجا هم یا. چیستی و چیستا یعنی گذینش یعنی گزیدن یعنی بزار اینجوری بگم اصل و مبناهی مفهوم به نظر من اینه که همجوری گفتم هر گذینشی ها یک نتیجه شما اگه گزینهش درست بکنی گذینشی که در واقع سودمند باشه برای خود و برای دیگران نتیجهش هم خوب و سودمند هستش و به گونه ای به زبان ما گذینش بهتر کردی بهست بوده بهست بوده بهشت بوده و اون همونی که ما میگیم بهشت در واقع یک یک حالت و یک حالت روانی، حالت معنوی که حالت خوبی است. می این اینجوری ببینیم. شاد و آبر است، خوشنود کننده است و این بهشت است. و این چینواد پرتو میشه گفت این جوریه. باز هر گزینه‌ای ما از یه پل چینواد رد میشیم اینجوری بگم. اگه درست رفتیم می‌ریم تو بهشتمون. اگه نادرست اتفاق کیا باشیم، همونجا برامون دوزخ دهنم میشه. یعنی حالمون بد میشه. ولی آره این جنویت تو به نظر من هم اون به قول مدرد پروتو نمونه اولیه پولیسارات میتونه باشه. بذار ببینم. خبارم به سپورتوش های قبلیان دستی سپره کردم. گفتن گشنگی و بیماری و ظلم به همه هست. چه حیوان؟ میشه ثابت کنن خدا مهربون پریز <تصفيق> <تصفيق> okay. ببینید در مورد مهربانی و مهر به طور کلی میشه باسم کفتگو زیاد خواهد این که چرا به طور کلی بدی این چیزی که ما بدی میگیم این های کهشون کنن گشنگی بیماری زون بیداد خیلی چیدار میشه در این مورد ردیف کرد چرا هست مگه ما نمیگیم خدا خوبه مهربان نیکیاره نیافرینده پس چرا این بدی ها وجود داره مگه نه پرسش بنیادین اینه این بدی ها از کجا میاد باز میگم من در این مورد یک فقط یک گفتار بزرگ رو به این خواهم پرداخت اما به سادگی بگم که اینها بدی هایی است که ما تعریفش میکنیم ما میگذاریم براش و این به خاطر کمبود های ماست نادانی ها ناگایی های ماست هنوز از جهان هستی رفتارهای نادرست ماست ها و گذینش های نادرست ماست این به مجموعی هستی به ابرام ازده به خدا به اینها کاری ندارد اینو ما نباید همجی گفتم خدا و خداوند رو انسانی نگاش کنیم هرچنین اینکه چون ما انسان هستیم و دیدگاه خودمون همچنو نگاه میکنیم ولی تفاوت دیدگاه ما اینه اینو باید آروم آروم ما اینو برای خودمون تجدید تایید کنیم بفهمیم که اینکه ما می‌گیم یگانگی یا به قول ما وحدت وجود این این چیز من به وحدت وجود هستم یعنی به یگانگی هستی که خدا با ماست در ماست در همه چیز است این یک موجود و یک جایی نیست که جای دیگه نشسته باشه و مثل پدر آسمانی مثل یک کارا رو بذاریم که حالا این مهربون باشه بیاد نمیدونم بده برای ما معجزه کنه بیاد فران کنه ببین اصلا دیدگاه خواه. ولی اینکه خوبی و بدی چیست اینها ساخته و پرداخته ما هاست و در رابطه با آنچه که ما برای خودمون خوشنوب کننده میدانیم یا نمیدانیم در اون رابطه در نزنیم خب گفتند آیا احریمن یا شیطان آفریده خداست اگر نه پس چگونه است که وجود دارد خب حالا ما باید بپرسیم از این پرسش کننده ای گرامی که ایشون وجود شیطان رو آیا چگونه دیدن؟ چگونه میدانن که به این سراحت صحبت میکنن که اندیشه های شیطانی وجود داره اندیشه های اهریمنی و انگرمنی وجود داره کسی که احریمنی میاندیشد و رفتار کند، خودش نماد آرین انگرمنی میشه اما اینکه ما به اون معنا باز برگردیم به اون در واقع فلسفه خلقت در ادیان سامی خب ما نمی اندیشیم که به این حالا شیطانی بوده یا اگر بخوایم اهریمنی به اون معنا وجود داشته که این انسان رو یعنی به عنوان آفریننده بدی ها و گونذرنده و فریبنده و فری دهنده به گونه یک موجود و یک وجود نه ما اونجور نگاش نمی کنیم ما به اندیشه کار دارید اندیشه های احریمانی وجود دارد پرسش دیگه احرام ببینم ساعت شنگ شد الان نهانیم شد من دستا پرسش دیگه جواب میدم که حالا البته تا وقتی پرسش میاد نیشنوندم وجود داره ولی خب حالا میرم یه خودگی میرم آب گشنگی رو همتایی که بود دوباره همون پرسش اومد که گشنگی نبود نووجود داره بپرسید خدا که میشناق انسان رو پس چرا گذاشت انسان این کار رو بکنه فکر میکنم که این پرسش در پیوند و پرسش پیش از اون هست که اگر خدا انسان رو میشناخ این کار رو میکنه حشر را گذاشت که این کارو بکنه. <تصفيق> آم، آم، آم، میگم ببینید ببینی دوستان بسیار دشواره که آدم از یک پارادایم از یک جهان بینی دیگری سخن بگه و بخواد از دیدگاه جهان بینی دیگر بیاد نگاه کن و برای برایی برای که پرسش دادن به این پاسخها دقیقا باید تو اون جهان می‌رفت. رفت یعنی این که خدا چرا گذاشت انسان چنین کنه این نگاه نگاه اینه که یک خدای انسانی فرا انسانی ها بذاریم ولی با اون ویژگی‌ها، ها که خالق است وجود دارد و انسان رو اینجوری از گره آب آفریده و بعدم حالا داستان هایی که پیرامونش هست که حالا شیطانی آمد جز اشتگان و بعد چنین چرا چنانش رو فریفن پرداخت و اینا یا یعنی اینکه انسان رو چرا آفرید؟ خب از دیدگاه آفرینشی زرتشتی اگه به طور کلی نگاه کنیم و یعنی از دیدگاه به گونهی میتولوژی از ارتوشی شناسی را بیاریم توش خب اون, اون زبان دیگری دارد به این معنا که جهان در مراحل گوناگون آفعیده شده و نخست حالت فروهری و میناوی بوده و سپس به گونهی بدی به وجود اومده و بعد برای اینکه این بدی بتونه باش مبارزه بشه چارهی نبوده تا در شکل مادی در بیاد و باش مبارزه بشه تا دوباره بتونه به اون حالت خوب و مینوی برای خودش برید خب حالا اگر کسی دوست داره که جهان رو این گونه ببینه و بخواد با این گونه برای خودش تعذیر تعلیل کنه با به نظر من به دیدگاه من با پندار ها کنه خب بکنه در نهایت من باش مشکلی ندارم تا زمانی که نخواد اون دیدگاه رو به من هم به زور بده نه به زور ولی خب من هم دیدگاه خودم دارم وقتی من میگم باز هم ممکنه برخی بگن خب درستم شاید بگن که آقا این دیدگاه شماست هایا دیدگاه دین زرخ تشتم برای من دیدگاه دین زرتوشت دیدگاهیست که نخص از گاته ها میاد و بعد بر اساس خرد و دانش به پیش مید خب این چیزی که به نظر من دین زرتوشتیست مزدی نیست. بنابراین برای پاسخ دادن به پرسش که توی اون پارادایم میره توی اون جهنبینی میره شاید من آدم درستی نباشم بهش پاسخ ب ولی به جای اینکه بپردازیم به اینکه اگر انسان انسان است که کام نیست انسان بده است دا داره بدی میکنه پس چرا اصلا خدا چه چیزی وجود ورد خب دیگه اون به جاهای دیگری سر میبره و سر میکشه. من برای این پاسخی ندارم. ولی پاسخ من برای خودم اینه که این مجموعه در هم هست و داره به سوی بهتر شدن میده و ما باید این, این رو بشناسیم. و نقش خودمونو که به هر حال بخواهیم نخواهیم درش هستیم حالا اگر به هر دلیل اون خدایی که فکر میکنیم چرا ما را آفرید و کاملمون نکرد از اول خواهی کامل بودیم که اینجا نبودیم که بشتیم با هم گفته دو کنیم بنابراین الان که هستیم و در برخورد با زندگی که واقعا باش در جریان هستیم و روزمره باید بگردیم هم راهامونو پیدا کنیم و از رو هم به ای بتونیم برای که بهتر کارفیت داشته باشیم اون تعادل همه هنگی درونی خودمون رو نیه داریم و اینجاست که دین به این صورت به کمک ما میاد که بتونیم به تعادل برسونیم بتونیم تا اونجا که میشه هم از بدی و هم از تنشا به دور باشیم ابزار است شد که درست فهمیده بشه و درست ازش استفاده بشه و ما هم اینجوری می‌بینیم بنابراین امیدوارم که شنمنده پرسش کننده گیرامی پرسخ من بپذیرند و چون پرسش دیگری هر دیگر نیامده یا رضا بدین من یک گمه دیگرم چک کنم خب یه پرسشم از این ور هست که آیا درست میباشد که نه این که گفته دیگه نماز از زمان اجراس سگاه بود میگه من رو نشد دیدم به راستی چرا سگاه بوده من دلیلی هم براش ندارم پنج گاهش الان داستان دیگری است به خاطر اینکه که ظاهرا به این دارید که گاته ها در پنج بخش هست و گاه وقتی میگیم از گات و گاه میاد که به معنای سروده و بعد مقرد معنی های زمان و مکانی به خودش گرفت این اصل و پاگی است پنجگاه به ماست ما که در بد بخش بندی روز روز شد پنجگاه پنج روز و پنجگاه نماز از, از پنج بخش گاته ها بیاد خب ادمین های گرانی اگر پرسش دیگری نیست و یک بار دیگه هم ایشون رو چک کنم تمام بسیار خوب پس من دیگر دوستان دانشجویان دانش, دانش گرامیان از اینکه با من بودید و شکیبا بودید سپاسگزارم. امیدوارم که میگم بتونیم بتونم باز از آن چه که دارم یک ذرهی هم در اختیار دیگران بذارم شاد باشید پیروز باشید پاینده باشید زیید شاد زیید نگهدار تا بار آینده که در خدمت خواهیم بود شب بخید